الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد. حالا بعد از یک وقفه تقریبا دو ما دوباره بحث هایی که قبلان شروع کردیم در مورد حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه و ازواج متحرات و تعدد ازدواج مختصران چون که شب اول هست مختصران در مورد حقائق تاریخی چون چندین هفته هست تا چندین ماه هست که بحث‌های در این مورد شروع شده است یکی از انتقاداتی که بر حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه وارد شود در مورد نارضایتی حضرت عمار بن یاسر و عبدالله ابن مسعود از ایشان هست چرا این دو بزرگوار از خلیفه وقت ناراحت شدند؟ این این یک نقطه ضعف برای حضرت امیر و امیر المؤمنین بعضی ذکر کرده اند. اما قبل از اینکه در این مورد چیزهایی گفته بشه این چیز اساسی هست که همیشه در یک حکومت و در یک نظام افراد موافق و مخالف وجود دارند. هیچ حاکمی نمی تواند به ساز همه افراد برخصد امکان پذیر نیست که تمام سلیغه رو اعمال بیکنند تو یک خونه تمام صلائق خونه هم بهوسیل پدر و مادر هم قابل اجرا نیستند یک سفره غذا هم صلیقهها متحد نیستن می بینی که پدر یک چیز دوست داره مادر چیز دیگر دوست داره بچهها هم صلایل چیز دیگر هست اما همه از یک سفره با اختلاف سلیقه استفاده میکنن بخوان یا نخوان غذا رو میخورن به عینهی در یه حکومت هم به همین صورته خیلیها موافق و خیلیها مخالفن، ساز مخالف میزنند، اما در اطاعت و در عمل همه از یه قانون اطاعت میکنند. ولو اون قانون هم موافقی حال بعضی از افراد جامعه نباشه. این چیز کلی هست. در من انبیا هم همه آدمها پیرایان انبیا نبودند، خیلیها بر دین خلاف انبیا حرکت میکردند. مومنین که مثل اونها سوا هست این یک نقطه هست پس و اگر افرادی در بین صحابه کرام یسی ناراحتی هایی در قلبها ایجاد شد این انتقاد نیست بر حضرت امیر بلکه این میرسونه اون قدرت مدیریت امیر وقت را که با وجود انتقادات اما اداره کرد حکومتی را که بسیار گسترده تا سه قاره هم گسترش پیدا کرده بود اون نظام را مدیریت میکرد و از اون نظام به صورت درست حمایت میکرد. افراد مخالف بودن دوازده سال تمام توانست این حکومت را خلافت راشده رو را در سه قاره آسیا بود، افریقا بود، و بخشی از اروپایی ها بودند در سه قاره حکومت میکردن بدون از کوچکترین اختلافاتی در مرزها ایجاد میشه فتوحات بودند گسترش اسلام بود پس اینها همش قوت ها و صلاحیت و مدیریت حضرت امیر و میرسونه چقدر دارا صلاحیت بالایی بود که با اون یه حکومت بسیار گسترده که همه امپراتوری ها قدرت ها همه شکست خورده بودند از یک جایی بدون از امکانات امروزی از اونجا مدیریت میشد از اونجا هدایت کرده میشد پس این که افراد در بین اونها سلیقه ها اختلاف پیدا بکنند این زیاد مشکل بزرگی نیستی این یک هست نقطه بعدی این از که بالفرض ما همه انتقاداتی الله خیلی از انتقادات و جواب دادیم هیچ انتقادی منطقی نبود بلکه کار امیر درست بود و اون کسی که انتقاد میکرد اشتباه انتقاد میکرد جوابها رو قبلا دادیم اگر ما بالفرض بگیم انتقادات هم وارد پس این نقطه بعدی اینجا هست که این میرسونه نظام اسلامی حکومت اسلام باید انتقادپذیر انتقاد پذیر باشه این هم انتقاد اومد این هم اختلاف اومد عمل کرد امیر چگونه بود آیا همین رو قلع کرد آیا همین رو به دار اعدام کشید آیا همه از بین رفتن همه رو قتل عام کرد آیا چونین چیزی رخ داد در تاریخ نه در حالی اگر با حکومت امروزی بخوام مقایسه بکنم قابل مقایسه نیست اینها با وجود این اما چون جلوتر که بحث شهادت حضرت امیر میرسیم میبینیم که با وجود این همه چیزها اما حضرت امیر رضی الله تعالی عنه کسی رو اعدام نکرد بنابر اختلاف سلیقه، با کسی برخورد نکرد این یک نکته نکته بعدی بالفرض ما همه رو وارد بدونیم بگی همه انتقادات واردن اشکال هم وارد شده اگر همه انتقاداتو بپذیری اما در مقابل کارهای حضرت امیر انتقادات هیچ هست چرا؟ چون حضرت امیر رضی الله تعالی هم یک کار بسیار بزرگ از کارهای زیادی که جلواتر انشاءالله در بحث خدماتش میگن چی خدماتی رو کرد اما در قبل از اون ایک از کارهای بارزی که همه ما می همین قرآنی هست که رو دست ما هست جمعوری قرآن قرآن رو کرد داریم از این قرآن استفاده میکنیم. تمام فرق اسلامی منظور فرق اسلام خود رونا منتصب اسلامی دنند تمام فرق اسلامی بدون استثناء موافق یا مخالف داره از همین کتاب استفاده میکنه در حالی که در قرآن ما روایت های شاز داریم روایت های مختلف داریم چندین نوع آیات دیگر هم وجود داشتن یعنی شازن روایت های مختلف بودن هم از اون روایت های شاز هیچ کس از اونها اتباع نمی کنن. از اون روایاتی اتباع می که حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی نو اون نسخه رو آوری کرد انتقادات اونها فقط روی افراد افراد رفتن تمام شد. اما این عمل خیر ایشان مانند نهر روانی هست داره جریان داره تا قیامت تا زمان از این مصحف استفاده میشه از این قرآن داره خون، تلاوت میشه کسانی داره تلاوت میکنن کلام را استفاده میکنن از این کلام و میخونن کلام را حفظ میشه که چقدر حافظ داره درست میشه چقدر عالم داره درست میشه چقدر مفسر دارن تفسیر میکنن این کلام را این همون نسخه ای هست حضرت عثمان ابن افان جمع آوریش کرده پس تمام این نیکیها ها می دستن به در اعمال خود این بزرگوار وارد میشن پس اگر همونجا انتقادی وارد شده با این همه سیل روانی که 1400 سال دارن در کل عالم حتی کفار دارن استفاده میکنن این نیکی ها کجا میرن؟ حدیث داره این قانون هست قانونی که قابل انکار نیست قانون چیست؟ قانون این است که اگر کسی بانی کارخیری شد این کارخیر رو انجام داد بخشی از این نیکی ها برای همون بانی و مؤسس میرسند اگر کسی مؤسس و بانی کا شعر بود بخشی از گناه ها به او میرسند این قانون هست در اسلام پس این همه انسان مخالف یا موافق داره از اون نسخه استفاده میکنه بخشی از اینها به این بزرگوار میرسند پس این یه بخش بزرگی هست حالا انتقاداتی که گفتن چرا از حضرت عثمان ابن افان از حضرت عبدالله ابن مسعود ناراحت شد حالا یکی هم در مورد حضرت عمار ابن یاسیر صاحب شرح نحذر بلاغه اینجا برایش خوب میدانی باز شد تا انتقاد بکنه تا توانست که انتقاد اینو خوب رنگین کرد تا بتونه جرب را بزرگ اعلام بکنه اما جور با غوغا به زور نمیشه جور به عملش بزرگ میشه حالا اینجا در این مورد بحثی که اله هست بحثی که اینجا هست این بحثش الهیه گوشید ذاتی که بعضی دارن بزرگ کردن چرا حضرت امیر رضی اللہ تعالی عنه از حضرت عبدالله ابن مسعود نارا شد و امار ابن یاسر این مختصران بگم حضرت عثمان ابن افان رضی اللہ تعالی عنه نرهنگام جمعاوری قرآن نسخهای های مختلف و فرا خواندند اون هیئت جمعاولی قرآن مسئولش زید ابن ثابت بود در این هیئت عبدالله ابن مسعود وارد نشد وارد نشد چون که خود راست جز سابق فی الاسلام دونست قدیم الاسلام بوده و کسانی بود که مورد تایید نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم هم بود یعنی میخواست که از من بعد کار گرفته, گرفته نشد ناراحت شد اگر من در این داستان باید می بودم این مشکل مشکلی بزرگی نیست بعد از اون نسخه که داشت بعضی از قرائات با نسخه که جماوری شد متفاوت بودن بعضی از طلاوتها و قرات ها منظور از تلاوات گاهی یک حرف بالا پایین از بیشتر نه یا نوع روایت و قرات فرق میکرد اون نسخه رو از ایشان گرفت و و اون دیگه منحدم کرد تا همه مردم بر یک مصحف جمع بشد اینجا هم که ناراحت شد هم بعد از او فرمودن که من رجوع کردم من اتباه میکنم و ناراحت نیستم بعد انتقاد کردند که تا پایان عمر ناراحت بود و تا وفات کرد حتی جنازه شد حضرت عثمان نخوندن این هم دروغ محضی هست تا آخر ناراحت نبود در صحیح بخاری داریم که در حج، در ایام حج با ملاقاتی کردن با صحبتی کرد از دلش بیرون آورد و هنگان وفاتن خود حضرت عثمانی منافان جنازه حضرت عبدالله مسعود را خوندن پس این اشکال وارد نمیشه این مختصرش همین است اما در مورد امار بن یاسر این چرا ناراحت شد؟ جز کسانی بود که جز مخالفین بود اول بگن چرا ناراحت شد؟ علت اساسی این است که یک روزی بین عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه و ابا سد بن عتبہ اختلاف پیش با هم درگیر شدند اومدند در محضر حضرت امیر و حضرت امیر هم اونجا دیگه هر دو تنبیه کرد وقتی که هر دو رو تنبیه کرده بودند اینجا دیگه ناراحت شدند چون حالا یک نه این وظیفه خاکمه در کل نظام هم میبینیم افراد اول افراد شاخص هم اگر مخالف باشه تنبیه میشهند در هر نظامی مشاهدی میشه در تمام نظام هم میبینیم و استثمار نیست پس اونجا هم وقتی اختلاف اومد در مقابل قانون همه برابرند چرا حدیثی داریم که نبی مکرم اسلام فرمودند وقتی که یه خانمی کرد و قرار بود دستش از حضورتی حضرات صحابه اکرام ا حضرت اسامه رو جلو بردن عصامی سفارشی بکن داخل صحیح بخاری داریم اسامی هم سفارش کرد تا دست اون خانم قطع نشه نبی مکرر رسولان فرمودن که عصامی دست سفارش میکن در مورد حدود یعنی چه سفارش نکن بعد از این فرمودن که که ان فاطمه بنت محمد لا سرقه لقطع تو اگر دختر خود محمد، دختر من فاطمی هم اگر این کارو انجام بده دستشو قطع میکنم یعنی در دین ما استثناء نیست مقام حضرت فاطم خیلی بزرگ از اینها که پاکن اما نبی مکرم اسلام اون قدرت را و اینکه در این هیچگونه استثنای برای هیچ احدی نیست فرمودم استثنا نیست پس اونجا حضرت عثمان هم فرمودن حالا اختلاف کردید هر دو باید تنبیه میشن پس در این تنبیه هم اینجا استثنایی نبود اگر تنبیه همی خواستن بکنن تنبیه باید میکرد. اما حضرت از اینجا ناراحت شد در کل وقتی که حضرت عثمان رضی و تعالی نو بخلافت رسید کمی جز مخالفین بود و و جانب دیگران بیشتر مایل بود وجود بعضی صاحب شهر شرح نحج البلاله خیلی اعتقادات بزرگی کرده میگه روزی یک لیست از ظفه ها از انتقالات و آورد پیش از عثمان این همین مشکل تو داری بیرون ها رو گرفت و حالا اون رو خوب زدن. و حالا این رو بزنید خودش هم زد و بردگان هم گفت هم بزنیم و سودی حالا این اما رو تنبیه کنیم.ری چون کرد تنبیه کرد اما اینگروم هست. این چیزی نیست بعضی اینجور گفتن بعضی گفتیم که امروزی خونه اومد اومد در محل کار اجازه خواست، و مسئول در دربان وارد غلب وقت نیست حالا بروز سریبر بیا حالا تو مسیر شد و دربان تنبیه کرد اما این هم دروغ هست چون دربان هم این داستان واقعیت ندارد این داستان و مقایه نیست اینجا این به ابن طبقات ابن سعد تاریخ توریه تاریخ دیگر اینا دارن گواهی میدن این نیست که کسی میخواد چیزی به خودش زفت بکن اما چون که جز مخالفین بود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیه یک سری افرادی رو در حکومت در خود کشور خودش فرستاد برای مسئولیت از این فرستادی ها از اونها حضرت عمار ابن بودند عمار به طرف میدهست فرستاد عمار که میسر رسید اونجا با مخالفین با اونها ساز مخالف زد یعنی رف پیش محمد ابن ابی بکر. محمد ابن ابی عبد الله ابن صبا با اونها همراه شد و همه ها برگشتن با گزارش کار الا امور ابن بر نگشت اونجا مصر مون امیر مصر سعده عبد الله بن ابی سرح بود اونجا امیر هم نوش نامی بره حضرت عثمان که خیلی زیاد کردم و چه اله چ کار کنم حالت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو نامی نوشت با حضرت عمار بن یاسر با خوبی با محربانی برخورد کو تندی نکن او رو مدینه بفرست دوار با یک احترامی امار بن یاسر رو مدینه فرستادن زمانی که مخالفین اومدن مخالفین اومدن اون برو مخالفین خاصتاں حکومت اسلامی رو از بین ببرن بی اینها وقتی که اومدن مدینه مراوره حضرت عثمان ابن افوان به سا دستور داد در دستور داد که برو به امار روک با اینها بیاد صحبت بکنه اما تو رو با اینها مذاکره کن چرا چون حضرت امار بهترین گزینه بود چون با اونها در مس ملاقاتی داشت بزر منتقدین بوده اینها حضرت امار ابن یاسر فرمودن که لا رد دومعن و ابدا هرگز اینها من بر نمیگردونم. با وجود این بعض حضرت عثمان تنبیه نکرد هیچ نکرد در کل زمان اختلاف نمیکرد تندی نمیکرد این اینها حقائق ها. پس چگونه میخوان حضرت عثمان را بخونه الله انتقادات شدیدی وارد بکنم از بحث های دیگر هم هست میگن که امیر کوفه کرد دوباره ازلش کرد ناراحت شد اما این هم درست دیست در سال سیویک هجری به دستور حضرت عمر بن خطاب امیر کوفه تاین شد. مردم موترز بودن دوباره در سال 37 هجری ازلش کرد خودش عرض کرد وقتی دوباره حضرت عمر ازنش کاتی کردن این در اینجا فرمودن من می دونستن که ما میدونستان که عمار نمیتونه یعنی توانایی رو نداره اما انوری ذ انمون علی اللذین استضعفوا فلست میخواستن یک احسان بر اینها کنیم اما نتون سالا بالها خودشان گفت که مسئولیت داده شده دور از رو راحت کردن خودش انتقاد به هر حال این انتقادها به حضرة عثمان رض الله تعالی وارد نمیشوند